آقا فرمودم نعمت از ملت زبان نمیاد مدر بخاطر گناه هر وقتم هم برگشتن نعمت برمیگرده. ما زالت نعمتون ولا غذارتو اینشین الا به زنوب بعدم خود عزت بشارت دادن مجده دادن که اگر ما عوض شدیم لحظ لحل هم کل فاسه ولی رد کل شاره مفاده روایات رو بنده می خودن با کم و پس مسئله رو دیگه خدایا به جلال و عظمت صاحب این قبر متعهر چشم ما، گوش ما، فکر ما، مغز ما، زبان ما رو از لغزش حفظ فرما خدایا به احترام انبیا و اولیا و شاهدا و صدیقین ما رو از شر شیطان نفس اماره محافظت فرما شما برای اجابت چه صلاوات مرمزید